اصال افسان برنمیگه اس گروه جوان و فرهنگ به نام خدا ان یگانه سلام و درود بر شما همراهان شبانه رادیو جوان افسانه ها بخشی ارزشمند از میراث فرهنگی هر قوم و ملتی به شمار میرند اندیشهایی که در درون پر رمز و راز و در عین حال ساده‌اند و در همون حال که ریشه در ناخودآگاه آدمی و ژرفای فرهنگ مردم دارند، دائم در حال تغییر و تفسیر تازند. این هفته افسانه نور آبی رو براتون نقل می‌کنم. برگرفته از کتاب های افسون از دکتر برونو بتلهایم با ترجمه از دکتر کاظم شیوارزوی در روزگاران قدیم سربازی بود که در کمال صداقت و وفاداری سالیان دراز به پادشاه خود خدمت کرده بود. وقتی جنگ تموم شد، سرباز اثر زخمهایی که برداشته بود دیگه نمیتونست. مثل گذشته به خدمت خودش ادامه بده. یه روزی پادشاه بهش گفت اگه میخوایی میتونی به خونت برگردی سرباز؟ دیگه به حضور تو نیازی نیست و دیگه نمیتونی پولی دریافت کنی چون ما فقط به کسانی جیره و مواجب میدیم که به من خدمت کنند. سرباز از این حرف پادشاه ناراحت شد ولی نتونست چیزی بگه. اون که دیگه پیش پادشاه جایی نداشت با غم و اندوه تمام روز تا غروب راه رفت تا اینکه به جنگلی رسید وقتی شب شد نوری از دور نظرش رو جلب کرد و به طرف اون رفت و خودش رو در برابر خونه دید که عجوزه جادوگری در اون زندگی میکرد. سرباز جلو رفت و آروم در زد. پیرزن بیرون اومد. سرباز بهش گفت مادر جان یه سرپناه به من بده که شبو در اونجا بمونم. اگه لط کنیم مقداری خوراک و نوشیدنی هم به انبدی ازت خیلی ممنون میشم. پیرزن نگاهی به قد و بالای سرباز انداخت و گفت اوهو کی حاضره به یه سرباز فراری کمک کنم؟ با این همه دلم برات میسوزه و بهت کمک میکنم اما اما یه شرط دارم سرباز پرسید چه شرطی؟ پیرزن گفت شرط من اینه که فردا باید باغ منو بیل بزنی سرباز بلافاصله جواب داد باشه باشه این کارو برات انجام میدم پیرزن هم سرباز و به خونش راه داد و مقداری خوراک و نوشیدنی در اختیارش گذاشت فردای اون روز سرباز از خواب که بیدار شد فوراً به سراغ باغ پیرزن رفت و شروع کرد به بیل زدن اما تا غروب و آفتاب هم کارش تموم نشد پیرزن گفت آه میبینم که امروز نمیتونی راه بیفتی هنوز تمام باغ و بیل نزدی سرباز گفت من تا فردا تمام باغ و بیل میزنم نگران نباشین پیرزن گفت نه نه نه دیگه لازم نیست با بیل بزنی. من امشب هم به تو جاوو و خوررد و خوراک میدم. ولی تو در عوض فردای عراه پر از هیزم باید برام خورد کنی. سرباز پذیرفت و فردای اون روز تا غروب کار کرد. پیرزن گفت: تو میتونی یه شب دیگه اینجا بمونی و در عوض فردا بری پشت خونه من اونجا یه چاه قدیمیه که آب نداره با خشکم یه شم اون تو افتاده که نور آبی پخش میکنه و هیچ وقتم خاموش نمیشه تو باید اونو از چاه بیرون بیاری و به من بدی سرباز پذیرفت و شب و خونه پیرزن موند و فردا صبح سراغ چاه بی آب رفت چند دقیقه بعد پیرزن با سبد بزرگی از راه رسید و به سرباز گفت تو باید توی این سبت بشینی و بری ته چاه سرباز توی سبد نشست و پیرزن اونو به ته چاه فرستاد سرباز وقتی نور آبیو دید علامت داد که اونو بالا بکشه پیرزن هم اونو بالا کشید و وقتی به لبه چاه رسید دستشو دراز کرد تا شم رو بگیره اما سرباز که به ذات بد پیرزن پی برده بود گفت من تا دو تا پاام به زمین نرسه شمو به تو نمیدم. پیرزن از این حرف سرباز سخت عصبانی شد و با خشم سربازو به ته چای انداخت و از اونجا دور شد. سرباز بیچاره به ته چا پرتاب شد در حالی که شم همچنان نور آبی پخش میکرد اما تو ته چا این نور آبی چه فایدهی به اون داشت؟ سرباز چند دقیقه سرگردون در درمونده به این طرف و اون طرف چاه نگاه کرد بعد بی اختیار دست توی جیبه لباسش برد و تک نون خشکی و از اون بیرون آورد. در این لحظه موش کوچیکی رو کنارش دید با مهربونی نونو خشکو به موش داد موش شروع کرد به خوردن نونو و بعد گفت تو در حق من کمک بزرگی کردی خیلی گرست بود من به پاس این لطف و مهربونی تو کبریتی بهت میدم که اگه اونو روشن کنی هر خواسته ای داشته باشی براورده میشه سرباز کبریتی از موش گرفت و چند لحظه بعد اونو روشن کرد با روشن شدن کبرید یهو مرد كوچکاندامی ظاهر شد و گفت استاد چه فرمان میدی سرباز هاج و واج به مرد کوچکندام نگاه کرد مرد گفت من هرچه تو بخوایی برات انجام میدم سرباز گفت اگه میتونی اول دست منو بگیر و از این چاه نجاتم بده مرد كوچکاندام دست سرباز رو گرفت و از یه راه زیرزمینی به دنبال خودش کشوند. سرباز هم در حالی که هنوز شمع نور آبی و به همراه داشت قدم به قدم با مرد کوچکندام پیش میرد. مرد کوچکندام در میون راه گنجهایی رو که جادوگر در اونجا جمعآوری و پنون کرده بود به سرباز نشون داد و سرباز هم تمام جیباشو از طلا و جواهرات پر کرد. وقتی از زیر زمین بیرون اومدن، به مرد کوچک‌اندام گفت: حالا برو و با تناب اون پیرزن بدذاتو ببند و اونو تسلیم عدالت کن. مرد کوچک‌اندام اطاعت کرد و چند دقیقه بعد پیرزن بدزات سوار بر یک گربی وحشی با فریادهای وحشتناک مثل باد از اونجا گذشت. و کمی بعد مرد کوچک برگشت و گفت استاد دستور اجرا شد و پیرزن بدزاد به دار مجازات آویزون شد. بعد اضافه کرد و گفت استاد اگه دستور دیگه ای ندارین من مرخص میشم. اگه کاری داشتی که بکشی دوباره به سراغتون میام و اطاعت امری میکنم. سرباز گفت نه فعلا برو اما آماده باش که هنوز کارم با تو تمام نشده. مرد کوچک اندام سریع تکوند و در یک چشم هم زدن از نظر ناپدید شد. سرباز به شهری برگشت که از اونجا اومده بود و وارد بهترین مهمانخانه اونجا شد و سفارش آلیترین لباس ها رو داد و به صاحب مسافرخونه گفت اتاق خیلی باشکوهی برای من آماده کنین بعد فورا مرد کوچکندام و محصار کرد و گفت من به پادشاه این سرزمین سالیان سال خدمت کردم ولی اون منو از قصرش بیرون انداخت و حالا وقتشی که ازش انتقام بگیرم. مرد کوچکندام پرسید من باید چیکار کار کنم مستد؟ سرباز گفت پادشاه دختر جوونی داره که به اون علاقه زیادی داره. تو باید بری و دختر پادشاه رو بیاری تا عنوان خدمتکار تو خونه من کار کنه. مرد کوچکندام هم در یک چشم هم زدن رفت و دختر پادشاه رو که در خواب بود آورد سرباز با دیدن شهازاد خانم گفت <تصفيق> بینم که شغل جدید پیدا کردی خدمتکار جوان شهازاد خانم مقصوم نگاهی به سرباز انداخت و گفت تو تو همون سربازی هستی که سرباز کلامش رو قطع کرد و گفت بله بله بله بله همونی که پدر بیرهم و ظالم تو منو بیرون کرد آره خودم هستم و تو الان باید تاوان ظلم پدرتو پس بدی سرباز بعد با تحکم گفت جارو رو بردار و اتاق منو جارو کن بعد چکمه های منو هم واکس بزن میخوام چکمه هم برق بیفته شاهزاده خانم با چشمان خابالود هران چی که سرباز گفته بود رو انجام داد و دیگه چیزی نگم نزدیک صبح بود که سرباز به مرد کوچک گفت خب بهتره شاهزاده خانم رو به قصر ببری و اونو توی رخت خوابش بخوابنی و زود برگردی مرد کوچک به سرعت شاهزاده خانم رو به قصر برد و اونو توی تخت خوابش گذاشت از صبح چند ساعتی گذشته بود که شاهزاده خانوم از خواب بیدار شد و نزد پدر رفت و گفت که خواب عجیبی دیده. خواب دیده که کسی اونو به سرعت برق از کوچه ها عبور داده و به اتاق سربازی برده و اونجا مجبور شده مثل یه خدمت کار کار کنه. پادشا فکری کرده گفت عجیبه این خواب ممکنه حقیقت داشته باشه دخترم بنابراین؟ جیبات رو پر از نخود کن و ته اون سوراخی بذار تا اگه یه بار دیگه این اتفاق افتاد نخودها توی کوچه ها بیفتن و مسیر رفت آمد تو رو نشون بده. وقتی پادشاه این حرفها رو به دخترش میگفت مرد کوچک به صورت نامرعی اونجا بود و همه چیزو شنید. شب که شد، یه بار دیگه دختر خابالود رو مرد کوچک از کوچه ها عبور داد ولی نخودها مسیر اون رو نشون نم چونکه شریک جرم هیلگر همه جا رو نخود پاشیده بود شاهزاده خانوم ناچار شد تا نزدیکی های صبح باز هم خدمت کاری کنه این بار هم دختر تمام ماجرا رو برای پدرش تعریف کرد و پادشاه هم دستور داد جمعی به جستجوی سرباز برن اما این کارم ای نداشت و کسی از سرباز خبری نیاورد پادشاه ساعت ها فکر کرد و فکر کرد تا اینکه به دخترش گفت این بار که به خونه اون سرباز رفتی لنگ کفشت اونجا جا بذار من دستور میدم هر طوری شده لنگ کفشتو پیدا کنن این بار هم مرد کوچکندام از نقشه پادشاه باخبر شد شب که فرار سید سرباز از مرد کوچکندام خواست که بره و این بار هم دختر پادشاه رو برای خدمتکاری نزد اون بیاره. مرد کوچکندام گفت: قربان، دختر پادشاه قاستره لنگ کفششو توی اتاق تو جا بذاره و اگه اونو توی اتاق تو پیدا کنن، رفتار خیلی سختی با تو خواهند داشت. سرباز با غرور گفت: من هر چی میگم تو انجام بده. و روی حرف من حرفی نزن مرد کوچک هم اطاعت کرد و فورا شاهزاده خانم رو به نزد سرواز آورد و شاهزاده خانم باز هم تا نزدیکی های صبح خدمتکاری کرد و وقت رفتن لنگ کفشش اونجا توی اتاق سرباز جا گذاشت و توسط مرد کوچک به قصد بازگشت روز بعد پادشاه دستور داد کفش دخترش رو توی سراسر شهر جستجو کنن و بالاخره اونو توی اتاق سرباز پیدا کردند و سرباز هم که به اصرار مرد کوچکندام فرار کرده بود دستگی شد و به زندان پادشاه افتاد اما حالا اینو بشنوید که سرباز موقع فرار گرانبهاترین چیزهایی رو که داشت یعنی شمع نورابی و تلاها و جواهرات فراموش کرد و جزیه سکه طلا چیزی با خودش نداشت سرباز در حالی که زنجیر بر دست و پا کنار پنجره زندان ایستاده بود یکی از دوستان قدیمی خودشو دید که از اون حوالی میگذشت به شیشه زد و دوستش نزدیک اومد و سرباز بون گفت دوست عزیز خواهشی از تو دارم به فلان مهمون خانه برو و بسته ای رو که جا گذاشتم برام بیار منم به عنوان انعام یه سکه طلا تو میدم دوست سرباز هم فوراً به مهمانخونه رفت و بسته رو آوو. سرواز وقتی تنها شد کبری و با نور آبی شم روشن کرد در این موقع مرد کوچک اندام ظاهر شد و گفت استاد نگرانی چیزی نباش هر جا تو رو ببرن آروم برو فقط شم نور آبی رو فراموش نکن روز بعد سرباز و برای کیفر دادن آماده می کردن. سرباز از پادشاه استدعا کرد که آخرین لطف و نسبت به اون روا داره پادشاه پرسید بگو بگو هرچی چی بگو تو تا مرگ چند قدم بیشتر فاصله نداری بگو خواستت رو بگو سرباز گفت فقط میخواستم اجازه بدی کبریتی رو که دارم به یاد مادرم روشن کنم پادشا پوسخندی زد و گفت <تصفح> روشن کن روشن کن که شم عمرت داره رو به خاموشی میره روشن کن سرباز با نور آبی شم کبریت رو روشن کرد و در این لحظه مرد کوچک اندام ظاهر شد و در حالی که گرزی در دستاش گفت استاد چه دستور میدی؟ سرباز گفت پادشاه رو حسابی بکوب اون رفتار بدی با من داشته مرد کوچک اندام هم معطل نکرد و به سرعت برق از چپ و راست شروع کرد به ضربه زدن به سر و صورت پادشاه پادشاه مرتب سربازها و نگهبانان قصر رو صدا می زد ولی هر کدوم جلو می مدن گرز به اونها اما نمیداد در نهایت پادشاه مجبور شد در برابر جانش کشور پادشاهی و دخترش رو به همسری به سرباز واگذار کنه. افسانی نور آبی رو براتون نقل کردم. به نقل از کتاب کاربردهای افسون از دکتر برونو بتلهایم با ترجمه از دکتر کاظم شیوارزوی. عشق افسانه پردازی و قصه و شنیدن افسانه و قصه در تمام طول تاریخ تمدن با آدمی همراه بوده. افسانه ها که بخشی از ادبیات شفاهی مردمان هر سرزمینن به آسونی با هر محیط اجتماعی و محلی قابل انطباقن. و از این رو در این کهنگی تازه و امروزینه هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت ساله ویراستار استار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدا هدیه سیفیکار کار کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدرود